به نام حق و با عرض سلام و به محضر همه خانوم ها و آقایان زمن احساس و ابراز شادی و خوشحالی از این که در محضر سربران در این شهر به سر میبرم و ضمن امید و آرزوی این که وقت دوستان رو در این نیم ساعت یا اندکی بیشتر زایه نکنم. درباره مطلبی سخن خواهم گفت که تقریبا وجدان عمومی مردم ایران به طور کلی بر ضرورت این مطلب و ضرورت کندکاف درباره جوانه به این مطلب نوعی وفاق و هماهنگی داره مطلب رو از اینجا شروع میکنم که همه ادیان چه ادیان شرقی و چه ادیان غربی در طول تاریخ خودشون تفسیرهای بسیار متفاوتی دیده اند متفکران اهل فیلسوفان آرفان و سایر کسانی که در درون دین خودشون مطالعه و تحقیق می در هیچ دینی تفسیر واحدی از اون دین به دست ندادند اسلام هم از این سخن عام و از شمول این سخن عام مستثنا و خارج نیست در طول 1400 سال اخیر تفسیرهای مختلفی از دین اسلام به دست داده شده و این تفسیرها در عین اینکه همه تفسیرهای مبتنی بر متون مقدس دینی و مذهبی مسلمانان اما واقعا در مواردی چونان فاصله از یکدیگر دارند که باور نکردنی که همه این مفسران دارند متن واحدی یا مجموعه متون واحدی رو تفسیر میکنند. درباره تفسیرهای مختلفی که از هر دینی در طول تاریخ اون دین شده و از جمله از اسلام در 1400 سال اخیر شده، دو بحث از یکدیگر قابل تفکیه کرد یک بحث این است که از میان این تفاسیر متعدد کدام تفسیر به متون مقدس دینی و مذهبی وفادارتر است کدام از اینها تفسیر صحیح است، تفسیر دروست است، تفسیر پذیرفت تریست بر اساس قوائد تفسیری و بر اساس آنچه که در دانش تفسیر متون در دانش هرمنیوتیک استقرار پیدا کرده و به عنوان قواعد و قوانین تفسیری شناخته شده این یک بحثه یعنی اگر متکلمان اشعری و متکلمان معتذری و متکلمان امامی در باره اسلام تفسیر به دست و اگر فقیهان شافعی و هنبلی و هنفی و مالکی و جعفری و سایر مکتبهای فقهی از اسلام تفسیرهای مختلفی به دست و اگر آلمان اخلاق از اسلام تفسیرهای های مختلفی بدست دادن بعضی از اسلام تفسیر اخلاقی ارفانی بدست دادن بعضی تفسیر اخلاقی فلسفی بعضی تفسیر اخلاقی نقلی و تعبودی و بعضی هم تفسیر اخلاقی مستها تنگیشانه و باز اگر در دنیای اسلام در جهان امروز ما اسلام های بنیادگرایانه داریم، اسلام های سنت گرایانه داریم و اسلام های تجدد گرایانه داریم و باز میشه رشته این تفسیر های مختلف رو بیش از این هم ادامه داد یک بحث در باره همه این تفاصیر اینه که کدام که از این تفاصیر به متن مقدس و به متون مقدس دین اسلام نزدیکترن یعنی تفاصیر پذیرفتنی تر درستتر و قابل دفاع ترین. این یک بحث من امشب به این بحث اول مطلقا کاری ندارم این بحث بحث بسیار بسیار پیچیده و دامنداریه و اطراف و به این بحث واقعا از حدود معلومات من هم خیلی فراتر میری اما بحث دومی هم درباره این تفاصیر میشه کرد و اون بحث اینه که کدام یک از این تفاسیر به مسلحت ترند بشر رو بیشتر برآورده میکنند و از جمله و به خصوص مساله امت اسلامی رو یعنی مساله مسلمانان جهان رو بهتر تأمین می کنند، بهتر تحصیل می کنند. در اینجا بحث بر سر این نیست که حقانیت نظری این تفاسیر کدام بیشتر از بقیه است بحث در اینه که مسلح عملی اقتضای روی کردن به کدام از این تفاصیر رو بیشتر از سایر تفاصیر داره یعنی <تصفيق> بحث بر سر اینه که واقعاً چه تفسیری از میان این تفاصیر هست که اگر به اون تفسیر التزام نظری اولن و التزام عملی ثانیان داشته باشیم اولا انسانهایی دارای زندگی خوشتر زندگی خوبتر زندگی معنادارتر و ارزشمندتر و پرکارکرتر میشیم این در ساحات فردی و در ساحات جمعی هم جامعه میسازیم دارای امنیت بیشتر رفاه بیشتر عدالت بیشتر و آزادی بیشتر اینجا این بحث مصلحت فردی به علاوه مصلحت اجتماعی محل توجه و کانون مداقع ماست چون در میان همه تفاسیری که از اسلام شده همه این دو کار رو به یکسان هرگز انجام نمیدن ما باید ببینیم در میان این تفاصیل مختلف <تصفح> کدام فرد بهتری و جامعه بهتری میسازند اون وقت فرد بهتر یعنی فردی که زندگی خوشتر زندگی خوبتر زندگی ارزشمنتر زندگی معنادارتر و زندگی پرکار داره و جامعه خوب هم یعنی جامعه‌ای که دارای امنیت بیشتر رفاه بیشتر عدالت بیشتر و آزادی بیشتره من به این نکته دوم میخوام امروز توجه بدم علل خصوص در دنیای امروز یعنی علل خصوص در دنیای پس از جنگ جهانی دوم به این سو یعنی دنیایی که ما در هفتاد سال اخیر باهاش مواجهیم دنیایی که ازش تعبیر میشه به دهکده جهانی و به دو اعتبار واقعا این دنیا دهکده جهانی است یعنی درسته به لحاظ جغرافیایی وسعتش بیشتر نشده و کمتر هم نشده اما به لحاظ عملی دنیایی شده تبدیل شده به یک دهکده و از دو لحاظ این دنیا دهکده جهانی است یکی از لحاظ نظری و یکی از لحاظ عملی این جنبه نظری و اون جنبه عملی دست به دست هم دادند و دهکده جهانی امروز رو یک دنیای بسیار ترد و شکننده و دنیایی که باید با احتیاط هرچه فراوانتر درش زیست و باهاش مواجه شد تبدیل کردند. دنیای امروز ما به همین دو جهتی که خالا خواهم گفت واقعا دنیاییست بی سابقه در تاریخ به لحاظ ترد بودن لحاظ شکننده بودن و به لحاظ اینکه باید خیلی احتیاط و مراقبت کردن این دنیا در چگونه زیستن و چگونه داد تد کردن با این دنیا. چون این دنیا است که با ادنا خطایی واقعا ممکن بشکنه و دنیا شکسته شدنش به معنای اینه که واقعا نسل بشر در خطر انقراض حتی کمی. و نه فقط کیفی قرار این دو جهت که می گفتم یکیش در مقام نظره و دیگری در مقام عمل دقیقا اینه دهکده جهانی ما از لحاظ نظر معناش اینه که ما امروزه در هفتاد سال اخیر دنیایی داریم که هر ای در هر گوشه این دنیا رخ بده میتواند چند ثانیه بعد به اطلاع همه مردم دنیا برسه ما 20 سال پیش ممکن بود ای در ده من روخ بده و این واقعه تا پنجاه سال بعد هم به پنجاه کیلومتری ده من نرسه خبرش اما امروزه دهکده جهانی به لحاظ نظری اقتضاش اینه که هر واقعه‌ای در هر گوشه جهان هر چقدر این واقعه به لحاظ ظاهر خورد به نظر بیاد، ریز به نظر بیاد، جزئی به نظر بیاد، کم اهمیت به نظر بیاد این به اطلاع همه مردم جهان خواهد رسید به اولان که دارم با شما سخن میگم تقریبا میشه گفت با اختلاف چند ثانیه ای میتونن همه مردم جهان با خبر بشن از هر چیزی که در هر جا در حال گذره. و این معناشینه که ما به لحاظ نظری ذهنهای پر معلوماتری پیدا کرده ایم پر پیدا کرده ایم ما امروزه نسبت به ذهن‌های نیاکان ما بسیار, بسیار بسیار بسیار بیشتر و با سرعت بیشتر و با شتاب بیشتر حتی داره هی جذب اطلاعات جدید جذب خبرهای جدید، جذب باورهای جدید و جذب معلومات های جدید میکنه. این به لحاظ نظر. اما از لحاظ عملی دهکده جهانی اقتضاش اینه که هر واقعی در یک جا رخداد داد میتونه در همه جای جهان اثرگذار باشه. یعنی چونین نیست که ارزان شدن پنبه در یک کشور فقط اثرش روی زندگی مردم اون کشور باشه گران شدن نفت در یک جا. حتی چون این نیست که ترور یک شخص در یک گوشه ی عالم فقط یه خانواده ای رو بی سرپاز کرده باشه. ممکنه یک شخص در یک گوشه ی عالم ترور بشه و ناگهان این ترور بر صحنه عمل کل جامعه بشری اثر بگذاره. یعنی شما دیگه کمتر میتونید کاری انجام بدید تو زندگیتون که این کار تأثیری بر روند جهانی نداشته باشه و این معنیش اینه که ما به لحاظ عملی دیگه مفهومی به نام چاردیواری و اختیاری روز به روز کمتر داریم روز به روز دیگه کمتر میتونیم بگیم که خب حالا این حدود خانه ماست هر کار کردیم به خودمون و اهل خانمون مربوط میشه شما به لحاظ نمادین هم بخواید ببینید یه وقتی بود که من اگه در خونم رو میبستم تو سحن خونم خودم با خانواده خودم هر کاری که می کردیم خونه خودمون بود. ولی به لحاظ نمادی اگه دقت بکنید امروز وقتی در خونتونم می بندید هر کاری نمی بکنید چون آپارتمان زیر هم هست و ساکنان اون آپارتمان زیر هم تحت تأثیر عمل شما قرار می گیرن آپارتمان بالا هست. حالا این یک معنای خیلی نمادی نشه. کل جهان اینجوری شده. که عملی که تأثیرش فقط در توی کننده منحصر و محدود بشه عمل بسیار کم شماریه اکثر اعمال ما میتونه بر روند کل جهان اثر بگذاره خب این معنیش اینه که ما دامنه نظرمون هرچه فراختر شده و دامنه عملمون هرچه تنگتر شده یعنی هرچه بخواهید از ناحیه اطلاعات و اخبار و باورها و معلومات قنی و سرشار شده های ما ولی به لحاظ عمل روز به روز دستوپامون بسته تر و بسته تر و بسته میشه به جهت اینکه عملمون روی خیلی ها اثر میگذاره و چون روی خیلی ها اثر میگذاره اون آزادی عملی رو که قبلا نیاکان ما احساس میکردن اون آزادی عمل رو ما نداریم شما امروز میبینید که یک شخص میتونه واقعا وضع جهان رو تا مدتی تحت تاثیر قرار بده لازم نیست اون شخص رئیس جمهوری منبکت هم حتی باشه شاه من بکتم باشه نخست وزیر من هم باشه میتونه یک شهروند عادی در یک کشور یک کار انجام بده و کل جهان رو تا مدتی زیر تأثیرات آشکار و آشکار محسوس و نامحسوس خودش قرار بده این جهانی که تورد شده، شکننده شده. تورد شده از بلحاظ اینکه همه از همه چیز باخبر میشن و تورد شده به لحاظ اینکه همه چیز ممکنه نسبت همه کس ممکنه نسبت به هر چیزی واکنش نشون بده و این واکنش های جهانی ممکنه وضع رو ببرن به سوی یک نوع نابودی آم. اون وقت در این جهان دیگه نمی شود هر تلقی از دین رو به صلاح دونست. نمیشه گفت هر تلقی از دین داشته باشیم با هر تلقی دیگری از دین و ازش حالا بنده می در این صحبت و در این گفتگو بگم که تلقی ما از اسلام به گمان بنده. اگر بخواد تلقی باشه که به مسلحت فرد مسلمان اولاً به مسلحت جامعه یا جوامع اسلامی سانیان و به مصلحت کل بشریت باشه به گمان بنده و با در واقع فهم ناقص بنده باید هشت ویژگی تلقی ما از اسلام داشته باشه به ازای هر ویژگی که در تلقی ما از دین خودمون مفقود بشه ما بلقوه و بلفل خطرناک میشیم هم برای فرد خودمون خطرناک میشیم هم برای جامعه و جوامع اسلامی خطرناک میشیم و هم برای کل جهان خطرناک میشیم این فقط در بارگ اسلام هم صادق نیست مسیحیت هم باید مسیحیت اینچنینی بشه آین بودا هم باید آین بودای اینچنینی بشه آین هندو هم باید آین هندوی اینچنینی بشه عدیان جهانی وقتی در دهکده جهانی قرار میگیرند و دنیاشون دنیایی بسیار پر اطلاعات و بسیار دارای دامنه تنگ عمل میشه چاره ای جز این ندارم که احتیاط کنند. ببینید اگر من در یک کوچه ای دارم راه میرم که کوچه وسیعیه و هر دو دقیقه سه دقیقه یه آدم از این کوچه رد میشه بی احتیاط راه رفتنم خیلی ضرر نمیزنه اما در یه کوچه اگه دارم قدم میزنم که هم کوچه تنگه و هم مدام در این کوچه رفته آمده و اگه یکی از این دو سر کوچه رو نگاه کنید در هر ثانیه چهار پنج دارن وارد این کوچه میشن یا از این کوچه خارج میشن در یه کوچه پر ازدهام احتیاط من بسیار بسیار میشه. چون در این کوچه دیگه بی احتیاطی من فقط به معنای زمین خوردن من نخواهد بود به معنای اینه که ممکنه ما خیلی را از میان ببریم به تبیر مولانا ما که کورانه آساها می زنیم لا جرم قندیل ها را بشکنیم وقتی کورانه قدم زدیم و قندیل های فراوانی اشیاء قیمتی فراوانی رو میشکنیم این کوران قدم زدن حتی اگر کوران قدم زدن مسلمانان هم باشه که متاسفانه امروز مسلمانان بسیار قرآن پور پور قدم میزنند من گمان میکنم که نه به فرد مسلمان و نه به جامعه ها و اجتماعات اسلامی و هم به دنیا هیچ نیکی نرسوندن مسلمانان هم مثل مسیحیان و مثل پیروان سایر ادیان و مذاهب باید با چشم باز زندگی کنند صرف اینکه که شهادت هی و چشمشون رو ببندند و دیگه هر طور زندگی بکنند این چیزی نیست که به صلاح خودشون باشه و به صلاح دیگران باشه این هشت ویژگی رو من با اختصار هرچه تمام فقط بهش اشاره میکنم و میگذارم اولین چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که مسلمان اگر بخواد برای خودش و دیگران مذر نواشه باید دست از خودشیفتگی برداره خیلی از ما اگر حتی خودشیفتگی فردی نداشته باشیم خودشیفتگی دینی و مذهبی داریم خودشیفتگی قومی داریم اناد میکنیم ممکنه من در رفتارم خیلی متواضع باشم ولی وقتی در دلم جستجو میکنید معتقد باشم که ما مردم ایران چون مردم ایرانیم با همه جای دنیا فهم میکنیم ما مسلمانان چون مسلمانیم با همه جای جهان غیر اسلامی فهم میکنیم این خودشیفتگی های گروهی خودشیفتگی های قومی که گاهی خودشیفتگی های نجادیه گاهی خودشیفتگی های مربوط به رنگ پوسته گاهی خودشیفتگی های مربوط به منطقه زاد و رود و به دنیا آمدن و روش کردنه و گاهی هم خودشیفتگی های دینی و مذهبی هیچ مسلمانی اگر به خود به زندگی خودش و دیگران لطمه نزنه نباید خودشیفته باشه خودشیفتگی فردی که نباید داشته باشه توازو اون که مسئله اخلاقیست و کاملا هم مورد تأکیده ولی البته الان مورد بحث من نیست ولی خودشیفتگی گروهی خودشیفتگی گروهی یعنی این که من بگم این گروه فقط به این جهت که گروه من است ترجیح داده بر هر گروه دیگری فقط به اون جهت که اون گروه دیگر گروه من نیست. الان متوکلین ما این تکبر رو و این خودشیفتگی رو در زندگی فردی خودمونم داریم اگر من بگم پدر من فقط به این جهت که پدر من است از هر پدر دیگری فقط به این جهت که پدر من نیست بهتره و شهر من و کشور من و رشته تحصیلی من و شغل و حرفه من و حزب من و انجمن من و جناه سیاسی من و طبقه اجتماعی من قشر اجتماعی من فقط به لحاظ این که از آن من است و من بهش تعلق دارم بهتر از سایر شهرها و منطقه ها و طبقه های اجتماعی و قیش های اجتماعی و رشته های تحصیلی دیگه و شغل و حرفه های دیگه است این یک نوع یک نوع و ما مسلمانان هم مثل پیروان بسیاری از ازیان و مذاهب جهان کاملا مستعد به این خودشیفتگی این اینکه ما فقط و فقط به دلیل اینکه شهادتای گفته این که دیگران این شهادتای رو به زبان نیاوردهن فقط به خاطر اینکه چند گرم گوشت رو تو زبان خودمون تو دهان خودمون جون گونده ما برتری داریم بر دیگران که اون برتری مسلمه این سخن خودشیفتگی قومی است و این خودشیفتگی قومی نه فقط و فقط باعث میشه که ما به دیگران ها و آزارها و درد‌هایی وارد می‌کنیم خودمونم هم از هایی که از دیگران می‌تونیم دریافت کنیم محروم می‌کنیم به اونا نقمت و درد و رنج وارد می‌کنیم و از اونها نعمت‌هایی رو که دارن نمی‌تونیم بگیریم چون خود ایم می‌گیم خودمون همه چیز رو داریم ما دیگه نیاز به کس دیگری نداریم این ویژگی اول ویژگی دوم ما باید بدونیم که مسلمان بودن به معنای طالب حقیقت بودن است نه مالک حقیقت بودن مسلمان بودن به معنای به حقیقت بودن است نه مالک حقیقت بودن ما مسلمانان و همه پیروان ادیان و مذاهب نباید گمان بکنند که عالم انسانی، زندگی این جهانی، حیات دنیوی مثل یک اقیانوس بسیار مواج و پرتلاتمه و بعد تو این اقیانوس فقط یک کشتی وجود داره و ما هم سوار اون کشتییم. ما متاسفانه این تلقیبمون الغام میشه. چه گویی در مواجیت این جهان هستی در تلات و منگیزی که تو این جهان هستی هست تو این اقیانوسی که ازش تعبیر میکنیم به حیات انسانی همه در معرض غرقند مگر کسی که سوار یک کشتی خواسته بشه و البته خود ما قبلا سوار این کشتی شده ای. بقیه هم دارند تو دریا در حال قرد شدن وقتی این تصور داشته باشید که شما سوار کشتی شده اید و شما دیگه رهیده اید از خطر قرق شدن اومد سه تا اثر در زندگی شما میگذارید اولین اثرش اینه که فکر میکنه تو کشتی دیگه که قرار گرفتیم حالا که از غرق شدن نجات پیدا ایم دیگه تو کشتی هر کار بخوایم بکنیم میکنیم یکی دراز میکشه رو عرشه کشتی یکی روزنامه میخونه یکی عرض کنم که با کسی داره بازی میکنه یکم تلویزیون تماشا میکنه انگار دیگه اعمال ما تأثیری نداره اعمال ما تا سوار کشتی نبودیم تاثیر داشت حالا که ما دیگه سوار کشتی شده ایم به امن رسیده ایم دیگه هر جور دلتون خواست زندگی بکنید توجه میکنید این اثر اولشه اثر دومش اینه که اگر خیلی هم اخلاقی باشیم و خیلی هم دل سوز انسان ها باشیم یعنی دل سوز اون آدمایی باشیم که سوار این کشتی نشده اند خیلی هم دلمون به حالشون بسوزه دائما فقط دعوتشون میکنیم که بیاید دستتون بگیریم سوار کشتی خودمون بکنیم توجه میکنیم یعنی بهشون میگیم اگر میخواید ما کمکی بهتون بکنیم ما فقط در یک جهت کمک به شما میتونیم بکنیم که بیاید خودتون رو برسونید به دسترس ما تا دستتون رو بگیریم سوار کشتی خودمون بکنیم اگه سوار کشتیمو میخواید بشید کمک بهتون میکنیم اما اگه سوار کشتی ما نمیخواید بشید برید هر کاری میخواهید بکنید. بکنید همچی دست و پا بزنید تا غرق بشید این اگه خیلی اخلاقی تازه باشیم و بخوایم به اونا کمک بکنیم کمک کردن اونها را متوقف میکنید یعنی که بیان سوار کشتی ما بشن و خالی سومش اینه نتیجه هم همچی تلقیه اینه که خیلی وقتها اصلا ما نوعی سنگی پیدا میکنیم میگیم کسی که سوار کشتی ما نشده چشمش کور اصلا باید قرق بشه اگه بتونیم ما یه کاری بکنیم که سریعی ترم قرد بشه چه بهتر چون نخواست بیاد سوار کشتی ما بشه انات میکنیم و بنابراین دلسوزی که نسبت بهش نداریم چی؟ یک نوع قصابت قلب یه نوع سنگدری یک نوع بیرحمی یک نوع بیعتنائی به سرنوشت اون آدمیان پیدا میکنیم و فکر میکنیم هر چه بر سرشون میاد کفاره ی همین گناهی است که اسمش سوار کشتی ما نشدنه و ما در این سالهای اخیر به وفوری ای رو ایم که بله اونها اونجوری شدن خب به خاطر اینکه به خاطر اینکه فلان کار رو میکنن ما باید دلسوز بشریت باشیم و نه اینکه که بگیم خب حالا که سوار کشتی ما نشدن هر بلایی سرشون اومد ما تازه خوشحالم هستیم این به خاطر که ما گمان می کنیم دین یک کشتی تو دریای مواگ هستیم با اینکه دین چیزی جز شنا کردن نیست هیچ کشتی وجود نداره در این اقیانوس مطلقا کشتی وجود نداره دین دعوت به سوار کشتی شدن نیست دعوت به یه نوع خاصی شنا کردنه میگه دین میخواد به زبان ساده من بگه شماها اگر بخواید تو این اقیانوس کشتی قرق نشین یه چند دقیقه میتونید بدون فن و بدون اصل و بدون قائب و دوزابط دست و بزنید بیشتر از چند دقیقه نمیتونید روی آب بمونید. اگر می‌خواید یک ساعت روی آب بمونید و اگر می‌خواهد پنج روز روی آب بمونید و اگر می‌خواهد یک سال روی آب بمونید، و اگر میخواید تمام زندگیت روی آب بمونید، باید فنون شناگری تو تر می‌شی. پوخته تر کنید. بنابراین آدم متدین کسی است که فنون شناگریشو دائما داره تکمیل می‌کنه. و بنابراین نه به انتظار کشتی میشینه نه خودش شد صاحب اون کشتی و واجد اون کشتی و مسافر اون کشتی میدونه و نه نسبت به بقیه بیتفابطه میبینه همه تو دریا دارن شنا میکنن نهایت کمکی که میتونه به کسی بکنه اینه که اگه از کنار اون رفت بگه خواهر من برادر من اینجوری مثل اینکه میگن شنا کردن بهتره تو هم آزمون بکن ببین شاید اینجوری بهتر بتونی رو آب بمونی چون سخن از روی آبوندن آب یک دقیقه و دو دقیقه نیست که با شناهای غیر فنی و غیر اصولی بشه تحصیلش کرد سخن بر سر اینه که تو لا اقل سال روی آب بمونی یعنی 70 سال یک زندگی خوش داشته باشی یک زندگی خوب داشته باشی یک زندگی معنادار یک زندگی ارزشمند و یک زندگی با کار کرده خوب مثبت میخوایی داشته باشی دین دعوت به شناگری است. دین دعوت به اینه که روز به روز طرز رو بهتر و بهتر و بهتر کنید هیچ کشتی وجود نداره که وقتی سوال شدید از شناگری معاف بشی. در خود قرآن من چون مخاطبان ارز کنم که ممکنه از من مطالبه دلیل قرآنی بکنن در خود قرآن وقتی که بین مسلمانان و یهود و نصارا اختلاف بود که ابراهیم بلاخره مسیحی بوده یا مسلمان بوده یا یهودی بوده و اختلافات بالا کشید آیه نازل شد در خود قرآن خطاب به اینا که میگفتن ابراهیم کدوم از سه تا دین رو داشت و ما کدوممون نزدیک‌ترین به ابراهیم؟ ما قرآن در این آیه به نظر من همین رویی همین چیزی که من گفته ام رو القا می‌کنه الا ان اولالناس به ابراهیم اللذین تبعوه نزدیک‌تران که نزدیک‌ترین افراد به ابراهیم کسانیان که مثل او عمل میکنند، اتباع از او میکنند، یعنی مثل او عمل میکنند. صرف فین که بگم ابراهیم از ماست و از تونیس، این منو ابراهیم میترد میکنه. میخواید مثل ابراهیم باشید، باید مثل ابراهیم زندگی کنید، مثل ابراهیم عمل بکنید. و باز به همین جهتی که در قرآن آیه ای که مورد تأکید همه ی محققان قرآنیه، حتی کسانی که ظاهرند هم هستند تو تفکر اسلامی استناد میکنن چه برسه به عرفا که عمیق ترین رو دارن از اسلام این آیه که لیسل انسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یورا انسان فقط آنچه داره سعی میکنه و فقط سعی خودشو خواهد دید نگفته اند فقط کشتی که سوال شده اید تو فقط وسیله نقلیه‌ای که سوال شدید مهمه لیسل الانسان الا ما سعا به میزان سعیی که میکنید و ان سعیه سوف یرا فقط سعیتون دیده خواهد شد سوفیورو در آینده دیده خواهد شد این تلقی یعنی اینکه دیندار بودن به معنای مالک حقیقت بودن نیست به معنای طالب حقیقت بودنه طلب میکنیم که روز به روز حقیقت رو بهتر و بهتر و بهتر بیاموزیم نه اینکه نه ما که حقیقت در مشتمونه بقیه هم هر فکر میخوان به حال خودشون بکنن ما در چنگمون حقیقت رو گرفتیم و داریم حقیقت رو دیگران هم یا بیان مثل ما بشن حقیقت رو در چنگشون بگیرن باییه صرف شهادت هنگ گفتن یک چهارک از نماز کندن و یا دیگه چشمشون کور هر کار میخوان بکنن, بکنن این تلقی تلقی دینی به نظر من نیست و اما ویژگی سوام و اون ویژگی که من بیش از هر چیزی برش تحکید میکنم نه به خاطر اهمیت فی نفسش به خاطر اینکه دیگه دیگه ترین و مورد قفلت واقع شده ترین جنبه حیات دینی ماست و اون اینه که ما باید قبول داشته باشیم که حقیقت آشکار نیست یک نا دیه حقیقتی وجود داره ببینید اگر شما حقیقت رو آشکار بدانید در هر حوزه ای در هر زمینه ای در هر ساحتی در هر معرفت بشری نتیجهش این میشه که کسانی که با شما مخالفند، به نظر تو میاد فقط و دشمنی دارن مثال جزنم دو تا حقیقت رو نظر بگیرید یک حقیقت حقیقت این که دوی به علاوه دو مساویس با 4 این یکی از حقایق عالم هستیه توجه می‌کنید یکی از حقایق عالمم اینه که تعداد کهکشانهای موجود در عالم طبیعت از 100000 تا بیشتره اینم یه حقیقتی که تعداد کهکشان‌ها از 100000 تا بیشتره حالا من به شما میگم اگر کسی حقیقت اول رو انکار کرد، شما چی میگی؟ میگی حتما با حق و حقیقت اناد داره. چون امر به این واضحی رو داره چی کار میکنه؟ انکار میکنه. اما اگر کسی حقیقت دوم رو انکار کرد، شما به این سراحت نمیگید. که انعاد با حق و حقیقت داره یک کسی بگه نه من فکر میکنم تعداد که های جهان از ست هزار کم تره ممکنه بگید خطا داره میکنه ممکنه بگید اشتباه داره میکنه ولی نمیگید معاند حق و حقیقته چرا؟ چون این حقیقت دوم به آشکارگی حقیقت اول نیست این که ما هر که غیر خودمونه معاند حقش میدونیم چون نظریه پس پشت ذهنمون اینه که حقیقت آشکار آشکاره پس و اونم همون حقیقتی که پیش ماست پس اگر کسی انکارش کرد داره یک حقیقت واضح آشکار رو انکار میکنه و کسی که حقیقت واضح آشکار رو انکار بکنه این واقعا معانده با حق و حقیقته به گفته قدم های ما مکابله داره میکنه با حق و مکابله با حق رو به گفته ابن سینا باید به تو بست. توجه هم کنیم؟ که ابن سینا یعنی فکر پورترین مغز متفکر و فیلسوف جهان اسلام هم گای جهان میگه معاندی هست، منکری هست که فقط باید به توبش بست به که پس پشت زهد ابن سینا این هست که یه حقایقی خیلی آشکارند و اون حقایق خیلی آشکار رو دیگه این انکار بکنه البته معلومه یه انادی، یه خصومتی یه اداوتی با حقیقت داره مثال بزنم به شما بزنم ببینید اگر من الان به شما بگم شبه این یه حقیقته اگر من بگم ساعت الان از هشت شب گذشته اینم یه حقیقته اما اگر حقیقت اولو انکار کردید و گفتید نه فلانی الان شب نیست من تقریبا شما رو متهم میکنم به اینکه شما معانده دارید با حقیقت اما اگه دومی رو انکار بکنید نه چون میگم احتمال این که من اشتباه بکنم هست حقیقت اونقدرم واضح نیست حالا من معتقدم ساعت از هشت گذشته دقیقا ساعت از هشت باشه شما هر چقدر به نظریه آشکارگی حقیقت بیشتر معتقد باشید بیشتر با بقیه انسانها و دگر خصومت پیدا میکنید فکر میکنید یه حقیقت مثل آفتاب روشنی رو دارن انکار میکنن و خبر ندارید که در اغلب حوضه های معرفت بشری حقیقت خیلی ناشکاره باید ذره ذره اپسیدون اپسیلون گام به گام با مسائی مشترک کل نوع بشر بهش نزدیک شد و وقتی که حقیقت ناشکار باشه و نیاز به تشریک مسائی کل نوع بشر کل نجاد بشر و نیاز به زمان قر... طول قرون را داشته باشه اون وقت دیگه ما به این حالت نمیرسیم که اگر کسی حرف منو قبول نکرد بگم تو داری با یک حقیقت واضح مخالفت میکنیم و وقتی با حقیقت واضح او رو مخالف نبینم میتونم باش دوستم باشم بگم با هم دوستیم اگر چه عقیقم با هم مخالفه اما اگه بگم تو با حقیقت واضح به گفته ی ما تو داری با عقل سراخ مخالفت میکنی یعنی عقلی که مثل کریستال روشنه خب دیگه نمیتونم با دوستی بکنم و یکی از رموز این که ما خوب نمیتونیم دوستی کنیم. با دیگر خودمون خوب نمیتونیم دوستی کنیم با پیروان ادیان و مذاهب دیگه حتی با لادینان با کسانی که ماتریالیستن با کسانی که با هیچ دین و مذهبی آشکی نکردن به خاطر اینکه فکر میکنیم حقیقت‌های واضحی رو دارن این کار میکنن ولی فی حقیقت واضحی در کار نیست شما از قدیم اون ایام میدونید که میگفتن ریاضیات اون شاخه از علمی که دیگه حقایقش از همه واضح‌تره ولی امروز فیلسوفان ریاضی هستن در رأسشون موریس کلاین فیلسوف ریاضی معروف آمریکایی که معتقدن حتی حقایق ریاضی هم به اون وضوحی که ما فکر میکنیم نیست این معناش سبست اندیشی نیست معناش حتی گرایی هم نیست معناش اینه که ما باید ذره ذره به حقیقت نزدیک بشیم یک نوع تدریجی به حقیقت و وقتی که سیر تزویجی به حقیقت پاییم بکنیم چیزی تو مشتمون نیست به عنوان حقیقت سریع که بعد بگیم مخالفانش مخالفان با حق و حقیقت هم. نکته بعدی اینه که دین از ما یک فرایند خاصی رو میطلبه نه یک فراورده خاصی را اینده می ببینید یک وقت هست که من به بچم میگم بابا تو باید بری تا ده دقیقه دیگه در منزل فلان کس برسی. اینجا اگر دقت بکنید برای من انگار مطلوب اون فراورده. نتیجه کار مطلوبه. میخوام به یه جهتی حتماً بچم تا ده دقیقه دیگه منزل فلان کس باشه. اما یه وقت هست که من بچم رو بچه دو سالم رو دارم راه رفتن بهش یاد میدم. نمیخوام به جای خاصی برسه ها اصلا میخوام طرز راه رفتن بشیاد بدم اینه که بدون اینکه عجله داشته باشم با تو معنیله هر چه تمامتر تا تیتای بشاد. چرا چون بران فرایند مهمه؟ این جریان راه رفتن مهمه؟ نه اینکه برسی به یک جای خاصی.عات میکنین. اون چیزی که اسلام از ما میخواد اینه که راه رفتنمون بر اساس صداقت و جدیت باشه. نه اینکه که من به یک جای خاص برسیم انات می‌کنی. شما یک مثال فقط بزنم اگه شما یک معلم منصف باشید یک معلم عادل باشید یک معلم اخلاقی باشید میدونید چی توقعتون از بچه ها که شایردان من شماها با صداقت و جدیت در طول سال کسب علم کنید اما هیچ وقت از شاگردان خواست که همه تون من شما میخوام در آخر سال بیس بیاری چرا؟ چون میدونید این شاگردان IQ های متفاوت دارن بهره های هوکیشون به اندازه هم نیست میدونید قوت حافظشون به اندازه هم نیست میدونید سرعت یادگیریشون به اندازه هم نیست سرعت انتقالشون به اندازه هم نیست امق فهمشون به اندازه هم نیست قدرت تفکرشون به اندازه هم نیست، حافظه شون به اندازه هم نیست، خب وقتی که اینا بچه ها اینقدر با هم تفاوت دارن که یه معلم منصف نمیتونه ازشون بخواد که من از شما میخوام که همه در امتحان 20 بگیرید، نمیخواد، نمیتونه بهشون بگه من دلم میخواد همه به مرز 20 برسید اما میتونه ازتون بخواد که من ازتون میخوام که با اینکه هوش و حافظه و سرعت یادگیری و سرعت انتقال و فهم و تفکر و همه چیزتون با هم متفاوته میخوام با تمام این تفاوتایی که دارید هر کدامتون تا اون که میتونید زحمت بکشید حالا یکی تا اونجایی که میتونه زحمت میکشه بیست میگیره یکم تا اونجایی که میتونه زحمت کشیده و 14 گرفتید مهم اینه که همشون با جدیت و صداقت با این دوتا ویژگی رحمتشون رو بکشن اگر ما بخوایم همه انسان ها به یک جا برسن باید روز اول هم که به دنیا اومدن از یک جا به راه افتاده ولی ما روز اول هیچ دوتایی ما از یک جا به راه نیفتادیم ویژگی جسمانی مونه هر دو انسانی و هم متفاوت از روز ولادتشون تا به ویژگی های ذهنی ویژگی های روانی ویژگی های اجتماعی بنابراین یک معلم منصف هیچ وقت نمیتونه از بچه هاش بخواد که برای من مقصد مهمه مقصد من بیسته باید بیست بگیرید اما میتونه از بخواد که سوی من و میلیجو بیا. به گفته مولانا میتونه بخواد،, بخواد که اگرم فلجید اگرم معیوبید اگر توان ذهنیتون کمه اگر ولی بالاخره سوی من میقیج و میلیژ و بیان نواجه میکنید اسلام هم و هر دینی از ما میخواد که بقیجیم و بلیجیم و بریم نمیخواد لزومن به یک جایی خاصی برسیم میخواد روز به روز تا جایی که میتونیم از صداقت و جدیت فروگذار نکنیم بنابراین اسلام طالب یک فرایند خواسته و اون فرایند همراه با دو ویژگی صداقت و جدیت یکی این که واقعا در زندگی جدی باشیم زندگی رو بازی تلقی نکنیم یکی اینام که با صداقت عمل بکنیم، قص فری به خودمون و دیگران نداشته باشیم، اگر با این دو ویژگی هر جا رفتید و به هر جا رسیدید، شما از لحاظ اسلام مصاب و مجوری. قرآن میگه ان الذین جاهدوا فینا لننسیانهم سبلا. تو این دو تا ویژگی که من میگم، تو این دو آیه اومده. یکی کسانی که جاهدون جاهدو یعنی مجاهده کنند، جهد کنند و جهد در تلفی زبان عربی یعنی استفراغ الهوس یعنی هر چه توان دارن به میدون بیارن استفراغ الهوس یعنی خالی کردن توان یعنی هر چه نیرو داری به کار بزن این همون است که من میگفتم و اما هر چه نیرو دارید به کارم بزن اما فینا در راه حقیقت اگر در راه حقیقت هر چه توان داری به کار زدی یعنی اگر جدیت رو داشته باشی و صداقت رو داشته باشی به هر جا که رسیدی معجوری بنابراین از تلقی دینی ما این نکته که شما باید حتما به جای خاصی برسید باید هست بشه و به جاش این تلقی بیاد که شما باید خوب راه برید خوب راه رفتن مهمه نه به مکان خاصی به جای خاصی رسیدن اینم یک تلقیه بعدی که ما باید در واقع در اسلام داشته باشیم اینه که اسلام دوست داره که فرد مثل هر دین دیگری دوست داره که فرد اصلاح بشه جامعه هم اصلاح بشه این شکی نداره همه یعنیان اینجوری هم دوست دارن فرد اصلاح بشه جامعه هم اصلاح بشه اما تمام خطا بر سر اینه که در این حال که میخوان فرد اصلاح بشه و جامعه هم اصلاح بشه میگن توی فرد هدف فقط باید اصلاح خودت باشه پس جامعه چی؟ هیچی تو اگر فکر اصلاح خودت بودی هر هرچه خودتو بیشتر اصلاح کردی ا... نتیجه عملت این میشه که اطرافیانم زیر تأثیر تو چی میشن؟ اصلاح میشن اصلاح خودم باید هدفم باشه و تنها هدفم اصلاح جامعه باید نتیجه زندگی باشه. نه هدف زندگی هدف زندگی یک انسان مسلمان فقط اصلاح خودشی هم هدف زندگیش اما نتیجه زندگیش این میشه که اگه اصلاح شدی به میزانی که اصلاح شدی دیگران زیر تاثیر تو اصلاح خواهد شد این که از پیامبر اسلام نقش شده است که و در بعضی از از علی و ابی طالب هم نقش شده که گفتند پول و دعاتان ناس به غیر از سنت کم و در بعضی از روایت ها بعدش اضافه شده ای به اعمال کم مردم رو دعوت بکنید به حقیقت اما نبا زبان هاتون بلکه با عملتون یعنی تو برو درست عمل بکن به میزانی که درست عمل میکنی دیگران زیر تاثیر عمل تو اون هم ذره ذره عملشون بهتر میشه هدف فقط باید اصلاح خودت باشه اما نتیجه کارت یعنی اگر موفق شدی در این اصلاح خودت اون وقت دیگران هم زندگیشون بهتر می‌شود ما متأسفانه تنها چیزی که تو زندگیمون نیست اصلاح خوده فقط ذرهبین رو گذاشتیم روی دیگران انت میکنید فقط ذرهبین رو گذاشتیم یعنی ارز کنم که این کسانی که می‌بینید به نام اسلام بزرگترین جنایت های رو انجام میدن و واقعاً واقعا اسباب وحن و شین اسلام شدن به خاطر اینکه که یک بار ذرهبین رو, رو خودشون نید بگن ما اصلا خودمون اصلاح شده یا نه دائم میخوان دیگران رو اصلاح کنن نتوی کنید و بعدم متمسک میشن به یه اصلی که اون اصل روز اول به این معنا نبود میگن ما نکنیم عمره معروف رو نهزمونکر کنیم امر به معروف و رحی از منکر روز اولی که تشریع شد هرگز معناشین این نبود که تو مطلقا به خودت کار نداشته باشی فقط ذرهبین دارید و دارید جنایتکار پیدا میکنی مجرم پیدا میکنی به زهکار درست میکنی پیدا میکنی و میخوای امرشون کنی به معروف و نهشون کنی از منکر من به عنوان یک مسلمان فقط هدفم باید اصلاح خودم باشی تو مجموع لا املکو الا نفسی توجه میکنی از قول حضرت موسا در قرآن آمده است که لا املکو الا نفسی و اخی من فقط و فقط خودم و برادرم رو میتونم زبط و مهار کنم بعد از عرفا وقتی این آیه رو بهش میرسن میگن او اخی که موسا گفته خیری به جا نگفته انسان لا املکو الا نفسی آدم فقط زبط و مهار خودش در اختیار خودشه اما اگر من زبط و مهار خودم در اختیارم هست که هست و اگر خودم رو اصلاح کنم به میزانی که اصلاح میشم شما هم اصلاح میشید و شما ایک زیر تاثیر منید حالا ممکنه تاثیر من فقط روی فرزندان خودم باشه شما ممکنه یادنی باشید که تأثیرتون روی میلیون ها آدم باشید اما این که اصلاح خود فراموش بشه و از اول من میخوام جامعه رو اصلاح کنم یکی از این مصلحان اجتماعی که در این جهان اسلام ظهور کرد نیمد مثل گاندی بگه من مردم فقط و فقط میخوام خودم رو اصلاح کنم اگر شما هم قصد خودتون اصلاح کنید یه راهی پیشنهاد من میکنم میتونی بکنید اما اینکه از اول من خودم گوتوره در هزار مفصده در هزار جرم و جنایت در هزار گناهم، و هر وقت تریبونی به دستم میاد از موضع بالا از ارتفاع توبیخ میکنم و پرخاش میکنم و داد و فریاد و اینا که مردم چرا اینجوری هستید این خلاف اون چیزی که اسلام گفته میگم ارفای ما میگفتن موسا حتی هم نباید میگفت قو انفسکم و احلیکم نارا اول انفس بعد چون اهل شما هم زیر تاثیر شما قرار می گیرند یعنی خانواده شما اونا هم اصلاح میشن فرق از بین اینکه آدم هدفش اصلاح خودش فقط باشه و اصلاح دیگران نتیجه موفقیت آدم در کار اول باشه یا اینکه از اول بخواد اصلاح جامعه بکنه مر به معروف و نحیه از منکر نباید در دستمایه کسانی قرار بگیره که فقط اصلاح خودشون رو فراموش کردن و فقط میخوان دیگران رو اصلاح بکنن مطلب بعدی که وجود داره ما در تلقی خودمون باید اینو دقت بکنیم ببینید دوستان من با یه مثال فقط میگم فرض کنید که من اومدم برای شما اثبات کردم با اطلاعات فنی و معماری و هنری و اینا اثبات کردم که تو شهر اصطحان زیباترین ساختمان فلان ساختمانه زیباترین بنا فلان بنا و فردم بکنید واقعا اثبات هم اثبات موفقی باشه یعنی اطلاعات هنریم بالا اطلاعات فنی بسیار بالا کاملا مسلط به معماریم هم. هم جنبه های علمیش هم جنبه های فنیش و هم جنبه های هنری و اومدم و اثبات کردم برای شما چه این ساختمان در اصفهان به تمام معنا زیباترین ساختمان اصفهان فرض کنید موفقم بودم بعد اگه شما من برگشتید و گفتید که خب مصطفی اثباتت موفق بود اما این ساختمان به تو چه ربطی داره بله زیباترینه اما به تو چه ربطی داره راجب میکنیم تو چرا افتخار داری میکنی؟ تو چرا داری مباهات میکنی؟ تو چرا داری باد به قبقب قب میندازی؟ وقت شما چی میگی؟ چی میتونید بگی؟ من فرض میکنم که شما اومدید با تمام اصول فلسفی و اصول روانشناختی و اصول ارفانی و اصول اخلاقی با تمام ذراتخانه فکریتون اثبات کردید که اسلام کاملترین دین جهانیه رسته؟ و فردم می کاملاً کاملا محفظ باشی اون وقت اگه من به گفتم که خب اسلام کامل تلین دین جهانیه به تو چه قفتی داره؟ کرکگور آرف و الهیدان مسیحی می گفت مسیحیان جهان اول اثبات کنید خودتون مسیحی بعد اثبات کنید مسیحیت بین کامله اول اثبات تو مسیحی وگرنه فقط اثبات کردی زیباتری خونه اصفهان ای اینه اما با تو که نیست ما مسلمانان اگه بخوایم در این زندگی به خودمون سود برسونیم و به جامعه بشری سود برسونیم اول باید نشون بدم من که خودم مسلمانم ما به جای اینکه اثبات کنیم خودمون مسلمانیم اثبات می‌کنیم اسلام کامل‌ترین دینه خب به تو چه رفتی داره به تو چه رفتی داره اینکه اسلام کاملترین دین باشه اصلا معناش نیست که چه خوب شد پس ما مسلمانیم چون هنوز مسلمانی اثبات نشده مسلمانی اثبات شدنش با دو تا جمله عربی به زبان جاری کردن نیست راجع میکنیم دو تا جمله همینطور که مسیحی شدن هم با دو تا جملهی به زبان لاتین عدا کردن که آدم مسیحی نمیشه ما اول باید اصفاد من مصطفی اگه میخوام هنری بکنم اول باید به شماها با زندگی خودم نشون بدم من مسلمانم بعد بگم و در ضمن اسلام کامل ترین دینه یعنی من تو اون مثال خودم اول باید اسناد و مدارک بیارم داله بر این که اون خونه تو اسفحان مال کیه؟ مال منه و بعد اصفاد کنم که این خونه زیباترین خونه اصفحانه وگرنه زیباتنی خونه اصفهان بودن به تو چه رفت تو که نیست کرکگور در نیمه قرن 19 به مسیحیان در اون کتاب معروفش به مسیحیان میگفت الهی دانان مسیحی بزرگان مسیحیت اول به جهان اثبات کنید که شماها مسیحی و بعد در سرت دربی که مسیحیت این فلان و اینه اینه من باید بگم ما که هنوز اثبات نکرده این مسلمانی چگونه میخوایم اثبات کنیم که دین اسلام کامل دینه و به فرص که در این اثبات موفقم بشیم چون بعضی ها معتقدن در این اثبات موفقم هستن میگم بسیار خو موفق شدی تو خودت هم با این اسلام رفتی داری؟ یا فقط نشون داده ای که یه خونه ای هست که زیباترین ترین خونه هستیه اما مالتو نیست. چگونه ما باید اثبات کنیم که خودمون مسلمانی توجه میکنیم به گفته یه باز بود چگونه باید نشون بدیم که آخرین مسیحی عالم خود مسیح نبوده است؟ نکنه آخرین مسلمان جهان اسلام پیانبر بوده نکنه آخرین مسلمان جهان اسلام علی ابی بیتاله بوده چون هست کجا میگید نیست بنابراین اثبات کامل تر بودن دین اسلام حتی به فرض اگر شدنی هم باشد برای من و تو هیچ مایه مباهات نیست چون ما مسلمان نیستیم و مسلمان نیستیم چرا برای این که ببینید ما به چند درصد قرآن و احادیث نبوی امن میکنیم؟ مگر رسول خدا نمی که من سمع رجلن یونادی یالن مسلمی ولم یجب خلیصر مسلم و که دیگه نمیتونیم از خود پیانبر جلو بزنیم. پیامبر میگفت اگر کسی شنید که کسی داره دادخواهی میکنه که به داد من برسید و به دادش نرسید مسلمان نیست. این یک نمونهش. آیا ما کم شنیده ایم که میگن به داد ما برسید و ما به دادشون نرسیده ایم؟ بنابراین این هنر نیست. فضمون از اسلام باید اصفات بکنیم. بهره خودمون از اسلام باید اصفات کنیم. مطلب بعدی این که ما تا وقتی که کسانی رو که رضائل دارند انسانهای شرور می دونیم و نه انسانهای بیمار تلقی دینی درست نداریم ببینی همینطور که جسم من دستخوش بیماری میشه، شه خوب کار نمیکنه، چشمم خوب کار نمیکنه، قلبم خوب کار نمیکنه، ذهن منم دستخوش بیماری میشه. روان منم دستوش بیماری میشه وقت <تصفيق> آیا جایی سوال نیست که چرا کسی که جسمش بیمار میشه رو بهش میگید بیماره و وقتی که پزشکش ببریم و کسی را که ذهنش بیمار میشه یا روانش بیمار میشه میگیم این شروره باید شلاقش بزنیم چرا چه استدلالی اقامه شده است برای این که فرق است بین بدن و بین ذهن و روان اگر بدن من قلب من خوب کار نکرد کسی نمیگه باید این آقا رو توبیخش کرد که قلبش خوب کار نمیکنه. تو سرش زد، زندانش کشی، شلاغش زد میگن بیچاره رو باید به پیزش کشه من میگم چه تفاوتی بین بدن و ذهن و روان وجود داره شما فرض کنید که من به لحاظ ذهنی هزار عیب دارم هست به لحاظ روانی هم هزار عیب دارم هست. خب باید بگید ملکیان مصطفی دیل از بیماری های جسمی که داره چند تا بیماری ذهنی هم داره. چند تا بیماری روانی هم داره. و بنابراین باید دلتون به حال من بسوزه. نه این که حکم قتل منو صادر کنید. نه این که من رو جریمن بکنید. نه این که من رو مجرم تلقی بکنید. توجه میکنید. ببینی تلقی شر یا بیماری فرقش اینه که اگر شما فکر کردید کسانی که چه که فرق بین تلقی بیماری و تلقی شر در اینه که اگر من معتقد شدم فلان خصلت روانی تو فلان خصلت ذهنی تو اگر معتقد شدم که یک بیماریه ببینید سه تا ویژگی پیدا می‌کنه نکته اول اینه که دلم به حالت می سوزه نه اینکه با دشمن بشم اگه شما بفهمید من مفتلا به بیماری قلبیم دشمن من که نمی شی. تازه دلتون به حال من میسوزه که ماها قلبمون سالمه مصطفی قلبش نسالمه اولا شفقت پیدا می نسبت به من دلتون به حال من می سوزه این یک دوم سعی می کنید تا اونجایی که در توان دارید منو به یک پزشک برسونید همونطورم و سومم هم این که اگر من بیمار بودم و برای پزشک سوندیش دیگه از فردا صبحش پزشک تلفن نمیکنه به من که بگه که اگر این دارو که نوشتم فهمیدم نخورده ای سه ضرب و اگر با مرتب نخورده ای یک ضرب شلاق پزشک میگه من نصه رو میپیچم اگه میخوای سالم بشی به نسخه عمل کن اما من گه پاسبان و پلیس و قوه قضایی ندارم بر تو که چرا به نسخه من عمل نکردی خود قرآن میگه لیه یا من سیعن بینتن و که من هلک ان خدا میگه ما راه قرآن میگه ما اینا جایی نمی مده قرآن میگه قرآن میگه ما راه رو به شما نشون میدیم برای اینکه کسانی که به راه نجات میخوان برن با چشم باز برن کسانی هم که به راه حلاک میخوان برن با چشم باز برن نگفته ما شما را با زور و زر بکشونیم لیه من من ان انبیده و یخ من ان انبیده من میگم بیایم و این تلقی که تلقی قرآنیه تلقی است که امیر المؤمنین هم در نهتر قلاقه راجب خودش داره و به پیانبر داره راجب پیامبر وقتی میخوان که وصف پیامبر رو از میخوان که وصف کنی پیامبر اسلام رو یکی از وصف که که راجب پیامبر اسلام میگن میگن و دوارون به طبیه طبیب دورگر بود طبیب بود نه شلاغ به دست نه اسس نه پاسبان نه پولیس طبیبون دوارون به طبیه یعنی طبیب دورگر بود حسنش بیشتر از طبیبان عادی بود طبیبان سا... عادی. عادی تو مذهب بهشون میشینن تا مردم برن پیششون اون خودش را میفتاد تو کچه و بازار میگفت طبیبی هم در دست رست همه جمع چرا؟ چون میدونه ذهنای ما هم بیمار میشن نه اینکه ما جنایت کار میشیم ذهنمون بیماره روانمون هم بیمار میشه و ذهن بیمار را و روان بیمار را باید برایش تبابت کرد اولا دشمنش نباید شد این شرور نیست این خبیس نیست این ناپاک نیست این در نطفه و لقمه وانونم فلان چیزش مشکلی نداره که شما میگید یا لقمش مشکل داره یا نطفهش مشکل داره یا فترت انسانیش از دست داده. نه بابا بیماره و اگه بیماره اولا به حالش دل بسوزونید و ثانیًا دلالتش کنید به یک پزشک متخصص و سانیان دیگه از پرد و صبح هم هی نگید که به ازای هر یک بار که نسخه رو عمل می‌کنید سه تا شلاق میخوری. بگید این راهه اگر راه سلامت ذهن تو و روان تو می‌خوای اینه اگر هم نیستونه خاصی اینو برو برو لا اکراحف الدین که در اومده آمده معناش این نیست که من بی تفاوت هم نسبت به سرنوشت شما معناش اینه که راه درست رو به شما نشون میرم میگم میخوای برو نخواستی هم نرو ندیب کنید اینه که تو قرب الان نزدیک چهل سال بعد کتاب نوشته میشه با این اناوین چرا تو زبان انگلیسی البته یه جناسی هم داره که ایو اور ایل یعنی آیا این شرور است یا بیمار؟ بحث کنیم که همینطور که جسم من بیماری داره ذهن منم بیماری داره روان منم بیماری داره حالا فرض کنیم من دگرندیش بیمارم یه کشتر ندارم که خب بری درمانم کنی و طبیبون دوارون به طبیه غیر از اینه که جلادون که یک شی... آه... تازیانه دستش گرفته و میگه بیارید ببینیم کیان که فلان جنایت کرده نه؟ استا با اینم یک نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم و اما نکته آخری که می‌خوام عرض بکنم اینه دین اسلام اگر بخواد برای ما مسلمانان نافذ باشه باید همراه با استدلال گرایی باشه همراه با استدلال باشه به تعبیر قرآن قل ها تو برهانکم ان کنتون صادقین برهان به معنای سخن روشنه یک سخن روشن یک دلیل روشن بیارید اگر اساسید ترجم وقتی یهودیان ادعاهایی می‌کردند قرآن میگفت که تلچ امانی بکن اینا که آرزو و اندیشی های شماست خودتون خیال میکنید عالم از این قراره قل ها تو برهان نکمتون صادقید اگر راست میگویید دلیل روشن بیارید خب آیا ما مسلمانان نباید معاف از این قاعده فقط یهودی‌ها باید دلیل روشن بیارن در ادعاشون تا قرآن توبیخشون نکنه ما ها نباید ادعای روشن داشته باشیم و دلیل قویام به سود اون استدلال به سود اون ادعا ما باید بدونیم که استدلال گرایی یعنی استفاده از نیروهای باوراننده بشر بشر ذهنش یه نیروهای اقنائی داره یه نیروهای باوراننده داره که ما با توسل به اون نیروهای باوراننده میتونیم بی باور رو به آسانه باور بکشونیم بهش بگیم تو معتقدی خدا هست یا نه فرمستن میگه نه بگیم من معتقدم خدا هست بیا گوش بده شاید با شنیدن استدلال من تو هم به آسانه باور به وجود خدا برسی نیروهای باوراننده اگر توی جامعه ای مفقود شدن یعنی کسی دیگه استدلال نکرد اون وقت راه برای دوتا چیزه دیگه باز میشه و این سرنوشت کل بشر من خلاصه کردم تو این روزیم. هر جا نیروه های باوراننده کار نشدن. یا فریبکاری یا خشونند. یکی از این در جاشون می برای اونایی که ذهنهای ساده لوح دارند، زود باورند. ذهنهای ورزیده تمرین کرده ندارند. شما چیکار می کنید؟ فریبکاری رو می دید. واسه تقرار و اونایی که ذهنهای چیزی دارن و فریبتون رو وقت با توسط به خشونت فریب برای عوام مردم و خشونت برای خواست مردم این هر کشوری هر جامعه ای که مردمش از استدلال روگردان بشن و نگن که هر کسی سخنی میگه باید استدلال کنه که چرا اینو میگم تو مگه خود علی جبنا طالب شما همه داشتن نمی کنید که اون میفرمود که آن ذر امام قید و لا تنذر من قال به آن که گفته شده است بنگل نه به آن کسی که میگوید به آن کسی که میگوید ننگرد یعنی هر کی میخواد گفته باشه بالا باشه پایین، وضعی یا شریف بعد استدلالش رو ببینیم. ببینیم این سخن استدلالی پشتش هست یا نه؟ اگر استدلال نبود بدانیم که به یکی از این دو تاست دوچار میشیم چون استدلال ندارن برای سخنانشون اون وقت اونایمون که ساده لوحی، زود باوریم تمرین بر ذهنی نکرده ایم معلومات کم داریم قدرت تفکلیمون ضعیفه فهم عمیق نداریم فریبمون میدن این که کار عوامون عوامون ناسو با فریب میگردوننشون، هر جودلشون بخواد میچرخوننشون و اما خواست را که ذهنهای برزیده دارن چیز روشن قضرت تفکر شخصی دارن استقلال فکر دارن اونا رو که دیگه نمیشه فری بهشون داد اون وقت خشونن یا بیا این کارو بکن یا میکشیمه یا بیا این کارو بکن یا تبعیدت میکنیم یا این کارو بکن فران برمان اما این قدش بزرگان دین اسلام نبود بزرگان دین اسلام رو خودتون به ما می‌گفتید. میگفتید امام صادق با چه با چه حوصله ای با مثلا عبدالکریم ابن عبل اوجا بحث میکرد خودتون به ما گفتید راست در روخش به خودتون اما شما خودتون میگفتید میگفتید بزرگان دین ما اینجوری بودن با ابن عبل اوجا یعنی بزرگترین متریالیست اون روزگار شما خودتون میگفتید چقدر امام صادق در کتاب های حدیثی اومده که با شستن بحث کرد خب ایشون هم میتونستن بگن ابن اول یه جایی ترورش کنید. انهت میکنید. این که شما میبینید ما این کارا رو میکنیم برای اینه که قدرت استدلال درمون به صفت رسیده. اون وقت میگیم عوام و ناس رو فرگولشون میزنیم با چهار تا آمار غلط با چهار تا دروغ با شیادی گولشون میزنیم و خواست رو هم چکار میکنیم خواست رو هم که گول نمی کنن میگه بخوا جای شما بیرونه ارز کنم که زندان ها نیست جا اونجا جای مخصوصه من این رو نه به خاطر یک سلسل سوگیری های سیاسی سلاح جهان اسلام اینه که دین مبتنی بر استدال و وگرنه هر که با من مخالق بود یک کسی مثل عبو بکر تو بیابون های سوریه و لبنان رو عرض می‌کنم عراق اول میگه من خلیفه رسول خدا. میگه خب آقا دلیلتون چیه؟ آقا به چه دلیل؟ مگه هر یغن علی میتونه بلند توی بیابونی بگه من خلیفه رسول خدا. به جای این که دلیل بیاره میگه شما دو دسته اید. یا قبول دارید یا قبول ندارید. اونایی که قبول دارن برن تو خونه‌هاش زندگیشون می‌کنن، اونا هم که قبول ندارن به مال و جان و ناموسشون تجاوز میکنن. زنانشون رو به کنیزین بچه هاشونو به آتش میکشن جدوی چشمشون شکم زنانشونو میرنم و فرزندان عرض میکنم که رو به دیوار می‌کوبم، اینم دلیل منه اینه که شما میبینین میشه یه مولا عمری اونجا بلند چه اون کارو بکنه یک نمیدونم لادن اون طرف بلند چه یه کاری بکنه یه نمیدونم کس بلند. چه. چون جهان اسلام استدلالگرایی رو فراموش کرده و رفتی فراموش می‌کنیم دیگه چاره جنزی نیست که یا باید دست به خشونت یا فریب کاری اگر بخواید عوام و رو با فریب به این سو و اونسو نکشونی و اگر بخواید خواست رو به زندان و جرم و جریمه و داغ و درفش نکشونیم چاره جزی نیست که برگردیم به گرایی و ببینیم برای مدعیاتمون چه استدلالی داریم من میگم اگر این هشت نکته در تلقی دینی ما به جد وارد میشد و ما انتظام نظری و عملی بهش میداشتیم من فکر میکنم جهان اسلام دنیایی خیلی بهتر از الان داشت خودش و دنیایی خیلی بهتر از الان میتونست بسازه یعنی اونم میتونست یه سهمی داشته باشه در ساختن یک جهان بهتری این تلقی های ه بازم روی هم رفته در تفکر او رفای اسلامی بیشتر از همه هست و بنابراین میخوام از این مجموعه نهجه بگیرم که من خودم در میانه من شخصاً از سر صدق و صفا ارض میکنم نه تلقی متکلمان اسلامی و نه تلقی فقهای های اسلامی رو داره این دوتو بیجه هشته بیجهگی نمیبینم میگم باز هم در میان گروه های مختلف مسلمان و رفا داره این تلقی بودن خدایاتونان کن سرانجام کارت و خوشنود باشی و مارستگاه بسید